بخش ششم روش به و روش کلی هنگامی که منظور یادگیری یک قطعه شعر یا نصر ادبی باشد میتوان از روش جزء به جزء یا روش کلی استفاده کرد در مورد اول متن را جزء به جزء فرا بگیرید بدین ترتیب که دو یا سه بیت اول یک شعر را بخوانید سپس مجددا آنها را خوانده و به دنبال آن سعی کنید آن را بدون نگاه کردن به متن تکرار کرده و بدون وقفه روی این دو یا سه بیت بازگردید تا هنگامی که آنها را حفظ کنید. روش کلی شامل خواندن تمام قطعه به صورت کامل بوده و باید کوشش کنید آن را به عنوان یک مجموعه حفظ کنید. پس از خواندن بار اول، یا ترجیحاً پس از چند بار خواندن به صورت کامل سعی کنید تمام متن را تکرار نمایید سپس دوباره کل متن را بخوانید به دنبال آن بدون آنکه به نکاتی که در حین تکرار قسمت‌های به خاطر سپرده شده به نظرتان میرسد مشغول شوید یک بار دیگر آن را به صورت کامل از ابتدا تا آخر بخوانید آلفرد می نویسد، نیازی به گفتن این مطلب نیست که روش کلی با غریزه ما مغایرت دارد. زیرا نیازمند توجه بسیار بیشتری نسبت به سایر روش هاست. هنگامی که گروه گروه دو یا سه بیت را تکرار می کنید می توان این کار را به صورت خودکار انجام داد و سعی می شود که آهنگ جملات مانند یک موسیقی که گوشهای درونی را تحت تأثیر قرار می دهد حفظ شود. ولی اگر خود را وادار سازید که تمام متن یا شعر را بخوانید، دیگر به خاطر سپردن آهنگ آن غیر ممکن خواهد شد. زیرا این موسیقی بدون مفهوم خیلی کوتاه است و درست مانند یک انعکاس می باشد. بنابراین، باید توجه را به صورت دیگری تثبیت کرد و آن را جلوتر تا مرحله مفهوم افکار و نظریات موجود در آن قطعه نفوذ داد. البته این تلاشی اضافی است که به نظر ما خوشایند نمی آید. زیرا ما شدیدن در مورد توجه خود ملاحظه کاری می کنیم. تجربه نشان داده که روش کلی یادگیری علا رقم خصیصه سخت و خشم بودن آن برای حفظ خاطرات به صورت آشکاری نسبت به روش جز به جز برتری دارد. این کار امکان می دهد که یادگیری سریتر انجام شود. نکته مهم، این است که با این روش نگهداری و ضبط خاطره طولانی تر و ماندگارتر خواهد بود. به این ترتیب یک شخص پس از دو سال نیز هنوز میتواند 23 درصد از قطعات یاد گرفته شده توسط روش کلی را مجددا تکرار کند. در حالی که با استفاده از روش جز به جز تنها 12 درصد از آن را به خاطر میآورد. به نظر من برتر بودن روش کلی، بستگی به علال کوچک بسیاری دارد اما مهمترین نکته در میان آنها این است که در این روش از حافظه افکار استفاده می شود در حالی که در روش دیگر فقط حافظه حسی کلمات مورد استفاده قرار می گیرد اما در واقع نتیجهگیری رئیس آزمایشگاه روانشناسی سوربون کمی بیش از حد مطلق است زیرا با استفاده از روش جزء به جز نیز می توان جهت کلی متن را دریافت برای این کار کافیست مطر را در مرحله اول به صورت کامل بخوانید به هر حال از نظر عملی تجربه نشان داده که روش جزء به جزء که نیاز به صرف انرژی کمتری نسبت به روش کلی دارد خصوصاً برای محصلین جوان مناسب است و این روش باید توسط دانش آموزان و بزرگسالان به کار برده شود البته باز هم به شرطی که استعداد توجه ایشان دست نخورده باقی بماند ای که همیشه اتفاق نمی‌افتد. البته در مراحل خستگی یعنی زمانی که قدرت توجه می می‌شود، بهتر است دانشجویان و بزرگسالان از روش اول استفاده کنند. بخش هفتم از روش‌های مختلف به خاطر سپاری در کنار یکدیگر استفاده کنید. یاداوری کلمات معمولاً بسیار سودمند است. زیرا این کار به صورت عادت در چهار حافظه مختلف که ممکن است یکی از آنها بر اثر بیماری بدون آنکه به بقیه آسیبی برسد حذف شود، مشخص شده است. این چهار نوع حافظه عبارتند از: حافظه بینایی، شنوایی، تلفظی و نوشتاری. این موضوع ما را سریعا به راهحلی حلی عملی سوق می‌دهد. برای به خاطر سپردن یک کلمه، یا فرمول علمی مشکل بایستی آنها را نوشته و سپس با صدای بلند بخوانیم. البته ضمن آنکه به این صدای بلند گوش می دهیم. از سوی دیگر از طریق مشاهدات و آزمایش هایی که در پی خواهد آمد مشخص می شود که شخص از نظر حفظ کردن، شنوایی، بینایی یا حرکاتی است. به عنوان مثال اگر شخص برای یادگیری یک کلمه یک کمی مشکل، مثلا رابین درانات نیاز به تکرار آن دارد به این معناست که وی از دسته شنوایی است. اما در صورتی که برای یاد گرفتن آن ناچار به نوشتن باشد، نشاندهنده این است که او دارای یک حافظه بینایی و حرکتی قوی می باشد. و سرانجام اگر فقط آن را به صورت واضحی در ذهن خود ارائه کند، او اساسا از گروه بینایی است. در این رهگذ متذکر می شوم که این روش های حفظی بیشتر تجسمی و تقریبی هستند تا تجربیات قطعی و بدون چون چرا، در واقع حافظه هر یک از ما در زمان واحد، هم شنوایی هم بینایی و هم حرکتی است. یک فرد عادی هر اندازه هم که مثلا حافظه بیناییش ضعیف باشد، آنقدر قدرت دارد که به او امکان بدهد، خصوصیات جسمی والدینش را به خاطر بیاورد و یا حافظه حرکتی وینیز هر اندازی که ضعیف باشد، این امکان را به وی می دهد که حرکات لازم برای قدم زدن یا نوشتن را به خاطر بیاورد. بنابراین نبایستی انتظار داشت که به افرادی بربخوریم که کاملا و منحصرا دارای یکی از انواع حافظه ها که از هم متمایز کرده این باشد. حافظه در آن واحد به انواع مختلف آن متعلق است، ولی این مسئله نیز حقیقت دارد که اکثر حافظه ها به یکی از این چهار گروه بیش از بقیه وابسته هستند. به هر حال هنگامی که شکلی از حافظه که بر شما غالب است مشخص شد، باید سعی در تقویت آن در جهت مناسب و ضمن تدائی کردن با دیگر اشکال حافظه در سلوهه اقدامات خود قرار دهید. مطمئناً از این راه هیچ هیچگونه ضرری متوجه شما نخواهد شد. در واقع اگر بخواهید یک شی یا واقعی را به خاطر بیاورید، یادآوری این موضوع در صورتی که قبلا توسط تدائی های مکرر تصاویر شنوایی و حرکتی با دقت هرچه بیشتر متصل شده باشد، با سرعت و روشنی بیشتری انجام خواهد شد. و این تصاویر شنوایی و حرکتی در همان زمان که تصویر حافظه غالب ظاهر می‌گردد آشکار می‌شوند. به عبارت دیگر، پرورش همزمان حافظه بینایی و سایر انواع حافظه یادآوری را به طور کلی راحت‌تر و قوی‌تر می‌سازد. زیرا در موارد مختلف یک خاطره مثلا شنوایی به کمک یک خاطره بینایی ضعیف آمده و آن را در صورت ضعف تقویت و در صورت ناقص بودن تکمیل خواهد کرد به طور خلاصه در صورتی که از چند حافظه استفاده شود شخص چیزها را بهتر به شکلی دقیقتر و کاملتر به خاطر خواهد آورد سوای آن چون تعدد حواس است که کار حافظه را آسان می‌سازد لذا باید سعی کنید تعداد آنها را افزایش دهید به عنوان مثال هنگامی که سعی می‌کنید یک قطعه شعر را یاد بگیرید، باید کوشش کنید بهترین لحن و ترین و صحیحترین شکل آن را برای تحت تأثیر قرار دادن از طریق تنوع بیشتر حواس، یعنی حس شنوایی و سایر اعضای گفتاری، به کار ببرید. اگر یک متن را کپی می‌کنید، پرانتزهایی را باز و قطعاتی را حذف کنید. و رنگ جوهر را در رابطه با معنای موضوع تغییر دهید. در تمام موارد، اگر نوع حافظه مربوط به آن را مشخص کرده باشید، بر احساسی که از آن طریق بهتر به خاطر می سپارید، تأکید بیشتری خواهید کرد. بخش هشتم تدائی کردن خاطرات خاطرات را هر بار که امکان داشته باشد، با همکاری دیگران تدائی کنید. بدین ترتیب یک آزمایش میکروسکوپی همواره همراه با تشریح کوتاه و طرحی که در ادامه با داده های یک عملکرد مناسب مقایسه خواهند شد به وجود میآید. تنها با تسیم کردن است که میتوان دقیقاً ساختار مورد بررسی را شناخت. از سوی دیگر از طریق تشریح و تحریزی است که امکان حفظ دقیق یک خاطره را به وجود میآورد در اینجا متذکر می شوم که نباید سعی کنید طرح یک نمونه میکروسکوپی و به طور کلی یک شکل تاریخ طبیعی، تأثیر هنری یا تزئینی داشته باشد. این یک تمرین علمی و فکری است و روش‌های آن عبارتند از کشیدن طرح با خطوط، طراحی بدون آنکه از دقت بکاهیم و همچنین تلاش برای روشنی و وضوح تا حد امکان چیزی که مشاهده شده است. علم ریاضی، چه قدیم و چه جدید باید با نگاهی جستجوگر و کاشف با آن برخورد شود و مسلما به مطالعه کتاب محدود نمی شود. در رابطه با نکته اول، سعی می شود که به مقدار زیادی جنبه ظاهراً نامفهوم و گاهی اوقات ناخوشایند یا مشکل آنها با در نظر گرفتن غذایای ریاضی به عنوان مسائلی که باید حل شوند کاهش داده شود. و در مورد نکته دوم از طریق پژوهش و بررسی استفاده از کاربردهای عملی اقدام می‌شود به این ترتیب برای فهمیدن یک مثال بی نهایت ساده که متعلق به هندسه قدیم و ابتدایی بوده و در نتیجه برای محصلین جوان مطرح می‌شود به راحتی در درمی‌یابیم که مجموعه زوایای یک مثلث با 180 درجه برابر است و با بوریدن زوایای یک مثلث از کاغذ و در کنار هم قرار دادن آنها از قسمت راست به این موضوع می توان پی برد مطالعه وضع، حالت یا حجم نیز همراه با کشیدن طرح و اندازهگیری ظروف همراه است در جبر ارائه اشکال به صورت طرح خصوصا در مطالعه کاربردها نقش اساسی ایفا میکند مسائل دیفرانسیل و محاسبه انتگرال کاربردهای بسیاری در فیزیک و شیمی دارد. از سوی دیگر در ریاضیات جدید کودکان می توانند از همان سنین پایین مثلا کار را با نظریه مجموعه ها توسط مهره قطعات کوچک نخ با رنگ های متنوع ستاره های کوچک قابل جایگذاری و معما شروع کنند. تمرینات ریاضی بایستی همیشه اساساً به شکل یک فعالیت زنده باشد. شناخت و یادگیری فیزیک و شیمی در صورتی که با آزمایش ها و تمرینات عددی و حل مسائل همراه باشد به خوبی انجام خواهد شد. حتی می توانید یک آزمایشگاه کوچک فیزیک یا شیمی نیز برای خود درست کنید که امکان انجام بسیاری از آزمایش ها که می توان آنها را با داده های کتاب عمل کرد به وجود می آورد. لذت یادگیری، روحیه ابتکار و حتی خلاقیت به این ترتیب به تحرک و فعالیت واداشته داشته می شود. سوای آن برای درک کاملا مناسب درس هایی که در کتاب داده می شود، هیچ چیز به اندازه ی حل مسائل فیزیک و شیمی کمک نمیکند. در این زمینه میتوانید از کتبی که مسائلی را در این مورد جمع‌آوری کرده و حل آنها را نیز ارائه میکنند به خوبی استفاده کنید. ولی در همین جا این نکته را نیز بگویم که این کتب در صورتی که به طرز بدی مورد استفاده قرار بگیرند میتوانند نامناسب نیز باشند. در واقع در صورتی که آنها در وحله اول به خوبی فهمیده نشوند، تأثیری را که هدف آنهاست کاملا از دست میدهند زیرا سادگی گولزنندهی را با دادن یک تقضیه از قبل حسب شده در شخص به وجود میآورند بنابراین باید در وهله اول حل المسائل را نادیده گرفته و تنها پس از آن که تلاش کاملی را از طریق توانایی خود انجام دادید به آنها مراجعه کنید. در این حالت شخص میتواند دریابد که نتایجی که به دست آورده درست بوده و روشهایی را که به کار برده مناسب هستند یا خیر در زمینه علوم طبیعی جمعآوری گیاهان وحشی تشکیل کلکسیونی از حشرات و سنگ و و کالبدشکافی حیوانات کوچک کار ساده است کتب مخصوصی نیز وجود دارد که شما را در این تمرینات یاری خواهند کرد در اینجا متذکر می شویم آموزشهایی که تحت نامهای جانورشناسی، شناسی، گیاه شناسی، شناسی و غیره شناخته میشدند اکنون جای خود را به بوم شناسی، سبب شناسی، روان فیزیولوژی، زیست ژنتیک و غیره دادهاند. و البته نباید پنداشت که تغییرات حاصله صرفاً لفظی هستند. این مسئله نشاندهنده یک جهش باور نکردنی است که امروزه علوم طبیعی انجام داده است. و آنقدر مجزه آساست که برخی گفتهاند ما وارد عصر زیست شناسی و زمین شناسی شده ایم. آموزش علوم طبیعی به نح گسترده از امکانات آموزش برخوردار بوده و ضروری است که ارزش فرهنگی غیرقابل قیاس و خصوصیت و ارزش انسانی آن در تمام سطوه تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد. ستاره شناسی علمی غیرقابل دسترسی نیست می توان بدون وسایل اصول سوبر فلکی و سیارات قابل رویت را شناخته و یاد گرفت و مراحل مختلف ماه و پدیده های دیگر کهکشانی را مشاهده کرد. مثلا یک تلسکوپ متوسط نیز می تواند بخشی از زیبایی های آسمان را به شما نشان بدهد. ستاره های دو یا ستایی، سحابی اوریون، کهکشان آندرومه لکه خورشیدی، برجستگیها و کوهای ماه حلقه های اطراف زحل، لکه های قطبی مریخ، قمرهای مشتری و غیره. اگر دانشجوی پزشکی هستید می توانید مقایسه حالت و روند بیماری و سلامتی را روی خود یا دوستانتان مطالعه کرده و فرا بگیرید. در هر شرایطی می توان از عکس های زندهی که بدن را به ما نشان میدهد استفاده کرد سوای آن، در صورتی که امکان داشته باشد، میتوان از کامپیوتر نیز برای آموزش و تمرین جهت تشخیص بیماری استفاده کرد. در این حالت، کامپیوتر برخی از بیماری ها را پیشنهاد کرده و دانشجو آزمایش های کلینیکی و پس از آن نتایج را بررسی کرده و تشخیص خود را ارائه می کند. و در صورت غلط بودن تشخیص توسط دستگاه اعلام می شود. هر نوع مطالعه جغرافیا بایستی همراه با دقت باشد. این امر را می توان توسط بررسی نقشه ها، ترها و عکس ها تسهیل نمود. و ضرورتاً از ترهایی که حفظ و در صورت امکان تسیح شده و همچنین از طریق مقایسه با نقاط آشنا روی نقشه نظیر مقایسه سطح یک منطقه یک دولت با کشور خود، مقایسه طول رودخانه های خارجی با رودخانه های کشور خود، مقایسه جمعیت یک شهر با جمعیت شهر دیگری که به خوبی میشناسیم انجام داد. همچنین باید کوشش شود که روابط بین پدیده‌ها و پیوندهایی که بین ترکیبات خاک، گیاه، تأسیسات انسانی وجود دارد، مشخص شود. به عبارت دیگر، روابط بین عوامل مختلف فیزیکی، بین عوامل فیزیکی و بیولوژیکی و عوامل فیزیکی و انسانی و عوامل مختلف انسانی که نهایتاً جنبه های زندگی در دشت کوهستان، سواحل، دهکده ها و شهرها را ایجاد می کند، مشخص شود. این تجزیه و تحلیل که نشانی عمیقی از واقعیت پدیده ها می باشد جدیدی را باز کرده و معنا و کاربرد مسائل را روشن میسازد. در مورد بقیه در دوران ما روزنامه های خبری، رادیو، تلویزیون، و سینما جغرافیا را بی نهایت زنده کردند. وقایع تاریخی با داده جغرافیایی تدایی شده و در صورت امکان با دیدار از موزه ها و مراجعه به مدارک اصلی روشنتر می شوند. با عمل کردن به این شکل، تاریخ معنای انسانی نسبت به مطالعه ساده کتاب پیدا می و این نکته قابل چشم پوشی نیست. در روانشناسی و فلسفه نکات تکیه‌گاه که بتوان بر آنها متکی بود بسیار زیادند و تعداد زیادی رابطه بین آنها و سایر علوم نظیر مقایسه داده‌های کتاب با زندگی روحی خود ما و عقاید فلسفیمان پیدا کردن مثال‌های ادبی در این رابطه با داده‌های زیستشناسی و پزشکی میتوان یافت. اصل بسیار مهم در این زمینه این است که اصطلاح روانشناسی یا فلسفی را که از قبل تعریف آن را نمی‌دانید، مورد استفاده قرار ندهید و در نتیجه بهتر است که یک دفترچه تعریف معانی لغات داشته باشید. مطالعه زبان‌های زنده از طریق استفاده از ضبت صوت، گرامافون و رادیو راحت‌تر شده و در صورت امکان از طریق فیلم یا تلویزیون نیز تسهیل می‌شود. زیرا اگر ضبط صوت، صفحه و رادیو امکان ارتباط با یک زبان زنده را میدهند، فیلم سینما و خصوصاً تلویزیون از این نیز فراتر رفته و ما را به نوعی در یک حمام زبان‌قوت ورساخته و در عمق یک رشته رفتارهای متناسب با ساختار زبانی قرار می‌دهد. ادبیات نیز می‌تواند از های مفیدی با روانشناسی، شناسی، فلسفه و حتی برخی داده‌های علمی بهره‌مند شود. و سرانجام، به طور کلی رشته علمی هرچه باشد، در حد امکان سعی کنید روابطی بین چیزی که یاد میگیرید و چیزی که قبلا میدانستید ایجاد کنید، تا اطلاعات جدید با اطلاعات گذشته تشکیل یک بدنه را بدهند. بخش نهم از وارد کردن حالات آگاهی زد و خودداری کنید. اگرچه این اصل کاملا واضح است ولی بهتر است حداقل در مورد آن تذکراتی بدهم. مسئله فوق را میتوان به این صورت تشریح کرد. زنده شدن یک تصویر به همان اندازه راحت تر است که در هنگام ظهور آن فرد با حالات متضاد کمتری برخورد کند. به این ترتیب هنگامی که سعی در یادآوری خاطره ای میکنید و سریعا به ذهن شما نمی رسد گاهی اوقات چشم‌های خود را می‌بندید تا از هر گونه احساس بینایی که ممکن است با ایجاد تصویر این خاطره مخالفت کند، جلوگیری کنید. به همین صورت، هنگامی که چیزی می‌نویسید، از صحبت کردن پرهیز می‌کنید. زیرا برای نوشتن یک کلمه، باید ابتدا تصویر آن در ذهن ایجاد شود. در صورتی که در همان لحظه شخص دیگری کلمات متفاوتی را تلفظ کند، این تصویر ایجاد نخواهد شد. به همین دلیل برای زبط یک واقعه در حافظه یا به خاطر آوردن آن، اگر نه در تنهایی، حداقل در آرامش و سکوت به دنبال آن به جستجو بپردازید. در غیر این صورت، بایستی نیروی توجه زیادی برای از بین بردن تأثیر محیط صرف کنید. این کار باعث خستگی اضافهی می شود که خستگی حاصله از فعالیت به خاطر سپردن افسوده می گردد. در صورتی که شخص مجبور به انجام کار ذهنی در سر و صدا باشد، می توان گوش را با کمک وسایلی پوشاند. این وسایل را می توان از بازار خریداری کرده یا اینکه به کمک یک قطعه پنبه و چربی آب شده گاو این کار را انجام داد. گاهی اوقات ممکن است این وسایل در مراحل اولیه باعث ناراحتی شود، ولی پس از یک هفته آنچنان به آنها خو می گیرید که حتی هنگامی که سر و صدا وجود ندارد نیز مشکل میتوان آنها را کنار گذاشت در دو کتاب دیگر نیز من استفاده از این وسایل را برای مبارزه با بیخوابی توصیه کرده ام بخش دهم ده بهترین لحظات برای یادگیری حفظ خاطرات همان گونه که در فصول چهارم، پنجم و هشتم متذکر شدم نیاز به شرایط فیزیولوژیکی مناسبی نظیر تغذیه خوب، جریان خون متعادل و رساندن اکسیژن به مقدار مناسب به مغز دارد. ولی حتی اگر این شرایط نیز ایجاد شوند، هنگامی که مغز خسته است، به خاطر سپردن مشکل است. اگر شخص کار بیش از حدی انجام داده و خسته و عصبی باشد، ممکن است بتواند یک کار بدون احتیاج به تلاش فکری نظیر یادداشت برداشتن و یا نوشتن یک نامه را انجام دهد، ولی مسلما برای یادگیری در شرایط نامناسبی به سر می داف که خود را برای یک امتحان یا کنکور آماده می سازند، در حالی که کار بیش از حدی انجام میدهند، از از هایی که در جریان این دوره به ایشان داده شده، خاطرات کمی در ذهن خود دارند که نشاندهنده ی واقعیت مورد بحث ماست. به طور کلی از همان ساعت اول بیداری مغز آماده بوده و انرژی ذهنی بیشتر از سایر اوقات دارد. به بدین ترتیب نویسندگان میدانند که صبحها راحتتر می و بعد از ظهر و شب ترجیح می دهند نوشته های خود را بررسی کنند و یادداشت بردارند. از سوی دیگر آزمایش های بسیاری روی محسلین انجام شده تا درجه خستگی فکری ایشان در ساعات مختلف روز مشخص شود. برای این کار از روش های دیکته، تمرینات ریاضی و آزمایش حساسیت پوستی استفاده شده است. همچنین مشاهده شده در جریان کلاس های صبح دانش اشتباهات املایی کمتری دارند، سریعتر محاسبه می کنند و حساسیت لامسه ایشان بیشتر است. در نتیجه امکانات بیشتری در اختیار دارند. در این مورد مثالی می زنیم. یک گروه از دانش آموزان که صبح قبل از شروع کلاس، چهل قلط املایی داشتند، تعداد اشتباهاتشان پس از گذشت یک ساعت از کلاس به هفتاد غلط، پس از دو ساعت به صد و شست و پس از سه ساعت به صد و رسیده است. نتیجه این مشاهدات مشخص می کند که برای یادگیری مسئله ادبی یا علمی، اساساً بایستی این عمل را در ساعت اولیه صبح انجام داد. در عین حال همانطور که در فصل دوازدهم خواهید دید، چون زمیر ناخداگاه نقش بسیار مهمی در رابطه با یادگیری دارد، لذا بهتر از شبها قبل از خوابیدن موضوع مورد مطالعه صبح را سریعاً بررسی کنید. این اصل که شامل یادگیری در هنگام صبح می باشد، بدون استثنا نیست. افرادی که عادت دارند تا دیر وقت شب کار کنند، غالباً صبح خسته بوده و در نتیجه برای این کار آمادگی ندارند. در این رابطه، ساعت بعد از ظهر و شب برای آنها جهت به خاطر سپردن و کارهای حفظی بهتر است. از سوی دیگر کودکان که بایستی برخی از درسهای خود را در منزل انجام دهند، به طور کلی ناچارند این کار را شب انجام دهند. بنابراین باید آنها را وادار سازید تا تکالیف خود را همیشه قبل از شام و پس از یک استراحت تقریبا یک ساعته انجام دهند. و سرانجام باید بدانید که چگونه از تمام لحظات روز برای به خاطر سپردن و تقویت موضوعات مورد مطالعه استفاده کنید. برای رسیدن به این مقصود بهتر است توجه خود را جهت بدهید. در جمع تصاویر و افکاری که در زمینتان ظاهر می شود، گاهی اوقات یکی از آنها به موضوعی که فکر ما را مشغول ساخته مربوط می شود. در این حالت شما متوقف شده و به این مسئله جدید توجه می کنید. به تدریج زنجیره های جدیدی از تصاویر به آن میپیوندند به صورتی که تدایی های افکار از هر نوع که اغلببی ارزش مظر و یا حتی ناخوشایند هم هست جایگزین تداییی مفید می شود و میتوان آنها را بدون خستگی و مانند یک تماشاگر علاق بررسی کرد. آنها مسلما با سرعتی متوسط توسط تداییی اصلی دنبال خواهند شد ولی همین روند مجددا خصوصا در صورتی که ظهور آنها را مساعد سازیم به وجود خواهد آمد. و بدین ترتیب در شرایط حساس که در جریان آن وقت خود را تلف می‌کنیم، این امکان برای ما ایجاد می‌شود که بدون اشکال کار یادگیری خود را ادامه دهیم. بخش 11 هم. کاری را که باید انجام شود، سریعا انجام دهید. بهتر است ذهن خود را از پر شدن دور کنید زیرا در این صورت حافظه خود را با این اندیشه که کارهای کوچک متعدد روزانه ضرورتا باید در زمان خاصی انجام شوند انباشته خواهید کرد اگر مجبورید هزار موضوع کوچک معمولی و پیش و پا افتاده را به خاطر بیاورید مسلما ذهن شما از آمادگی برای حل مشکلات برخوردار نخواهد بود برای این کار بایستی عادت کنید کاری را که باید انجام شود سریعاً انجام دهید. به ترتیب غیر از صرف کمی وقت برای پاسخگویی که نیاز به کمی تعمق و تأمل دارد، سریعا نامه نامه‌ای را که به شما می‌رسد پاسخ دهید. این موضوع از یک سو باعث می‌شود که دیگر به آن فکر نکنید و از سوی دیگر افرادی که با شما مکاتبه دارند نیز از وقت شناسی شما خوشحال خواهند شد. اگر پولی باید پرداخت شود، آن را هر چه سریتر بپردازید. این کار از فکرهاي بیهوده پیشگیری خواهد کرد، چیزی که ممکن است ناخوشایند نیز باشد، و علاوه بر آن باعث خوشحالی طرف مقابل نیز خواهد شد. همچنین صورت حسابی که باید پرداخت شود، هر اندازه که اندیشه این قرض تازه تر باشد، راحتتر از طرف شخص مورد قبول واقع می شود. بنابر این سعی نکنید که منتظر اختاری برای پرداخت آن باشید. مثال‌هایی از این دست زیاد است. مثلا مقاله‌ای از روزنامه را که می‌خواهید نگاه دارید، به سرعت ببرید، و روی یک کارت اطلاعات بنویسید که می‌خواهید آن را نگاهداری کنید یا مثلا وسیله‌ای که از آن استفاده کرده اید، به سرعت سر جایش بگذارید و غیره. نه تنها نباید بار بیش از حد و بیهوده‌ای برای حافظه بسازید، بلکه در برخی موارد باید عملا بسیاری از مسائل غیرمهم را به دست فراموشی بسپارید. حافظه بیش از حد ثابت و حجیم می می‌تواند در واقع مانعی برای رشد عالی ذهن شود. این مسئله از یک طرف به علت انباشته شدن حافظه و از سوی دیگر ایجاد وسواس را به دنبال دارد. در این رابطه ذهن شما برای آنکه چیزی را که برایش خوشایند نیست حفظ کند، گاهی اوقات برخی تصاویری را که از یک مجموعه ناخوشایند عاطفی دارد، به صورت خودکار حذف می‌کند. در این حال برای جلوگیری از انباشتگی در وهله اول لازم است همان گونه که گفتیم کاری را که امروز می توانید انجام بدهید به فردا موکول نکنید علاوه بر آن در یک روش رفتاری دیگر بایستی از توجه به افکار بی بیهوده، تصاویر نامناسب، متون بی و جزئیات گنگ خودداری کنید برای این کار کافی است هر چیزی را در همان وهله اول حفظ نکنید و سرانجام به طوری که متذکر شدیم، باید بدانید که چگونه فراموش کنید. ولی مسئله عجیب و در ظاهر متضاد برای فراموش کردن ارادی یک خاطره این است که باید به مدت چند لحظه به شدت به آن بیاندیشید. شما می توانید یک فکر وسوسه انگیز یا بیهوده را با مشخص کردن از طریق نوشتن یا با تعبیر آن توسطی یک تر به سادگی از ذهن خود دور کنید. سپس کاغذ را سوزانده یا آن را در سطل زباله بیندازید. همچنین می توانید همان گونه که چرچیل توصیه می کرد، فهرستی از تمام مشکلاتتان بنویسید و پس از مقایسه، آنهایی را که نیاز به راه حل فوری ندارند خط زده و آنهایی را که در همان هنگام نیازمند پاسخی سریع و فوری هستند، برایشان پاسخی بیابید. وی می گفت از همان لحظه‌ای که شما انبوه مشکلات خود را به تعدادی مورد خاص و مشخص کاهش می‌دهید بر آنها مسلط خواهید شد